وصل 22 فرزندان والدین بیشعور تا زمانی که معلم کودکستان منو برای اولین بار در عمرم به اسم کوین صدا نزده بود نمی دونستم که اسمم اوهوی گوساله نیست کوین فرزند والدین بیشعور از نظر تاریخی شاید مظلوم ترین گروهی که تاکنون قربانی بیشعور ها شدن فرزندانشون باشند بعضی وقتا به بچه هایی که با اونا از نظر بدنی بدرفتاری میشه کمکهایی میشه اما بچههایی که از نظر روحی و روانی بدرفتاری میبین به حال خود واگذشته شدن. این به این معنیه که اونا در حالی رشد میکنند که گمان میکنند دیوانن یا به خاطر ارتکاب کارهای نابخشودنی احساس گناه میکنن. حالا خواهند فهمید که فقط فرزند افراد بیش اونا در حالی وارد دنیای بزرگترها میشن که هنوز از درک خود به عنوان یک آدم بزرگسال عاجزان اما خوشبختانه حالا کتابها، گروه های درمانی و درمانگرهای زبردست فراوونی هستند که علاقمند به کمک رساندن به اونا برای نجات از دست والدین بی این کار اهمیت فراوونی داره. چرا که تحقیقات نشون داده که فرزندان والدین بیشعور استعداد فراوانی دارن که خودشونم به والدین بیشعور تبدیل بشن. مگه اینکه یاد بگیرن طور ای بزرگ بشن. برای کسایی که بیست سال از بهترین سالهای عمرشون رو با بیشعورها سر کردن، هیچ راه علاج سریع و موجز آسایی وجود نداره. اما این افراد دست کم میتونن با دانستن این مطلب، که گناه چندانی بابت زندگی فلاکت بارشون متوجهشون نیست، نفس راحتی بکشن. یکی از قربانیان والدین بیشور می میگفت: از وقتی که فهمیدم چه کسی رو باید مقصر بدونم، درمان من خیلی سریع پیشرفت میکنه. حالا به جای اینکه از خودم متنفر باشم، از پدر و مادرم متنفرم و این موضوع خیلی حالم رو بهتر میکنه. بیشتر فرزندان والدین بیشعور انگیزه بالایی برای فائق اومدن بر سوء رفتارهای دوران بچگیشون دارن. چند نشونه فرزندان والدین بیشعور این است: یک پیش از هر چیز تا جایی که ممکنه از پدر و مادر خود دوری می‌کنند. در حقیقت بیشتر جمعیت آلاسکا از چنین فرزندانی تشکیل شده که موفق شدند تا جایی که ممکن بوده از پدر و مادرهای خود دور بشن 2. در جشن تولد پدر و مادرشون شرکت نمیکنند. این مسئله به این خاطر نیست که از جشن تولد خوششون نمیاد، بلکه به این خاطره که هنوز کارت تبریکی با مضمون برای هیچی متشکرم منتشر نشده. سه مدتی از عمرشون کاملا مشنگ میشن و به همین خاطر فکر میکنند که بیشعوری بیماری واقعی نیست یا با کسی برای ابتلا تارف داره. در همین هنگام در معرض بیشترین خطر قرار می گیرن و به شدت آسیب پذیر می شن. به نحوی که ممکنه با بیشعور دیگری ازدواج کنند و این چرخه را تکرار کنند. به این خاطرم که شده کمک و راهنمایی تخصصی برای این جوانان ضروریه مشکل واقعی فرزندان والدین بیشعور که در پس نفرت، ناامیدی، خوددرگیری، ترس و احساس بیارزگی اونا قرار داره چیه؟ نتیجه سالها تحقیق و تلاش در این باره به طور خلاصه این چون اینه. یک اشکال در ارتباط برقرار کردن با آدم های دیگر. هری، فرزند والدینی بیشعور که در حال درمانه میگه تا قبل از رسیدن به 23 سالگی نمیدونستم آدم هم وجود دارن که انگیز، کسیف و رزل نیستن. شاید به این دلیل که فکر میکردم همه ی مثل پدر و مادر خودم هستن. دو اشکال در ارتباط برقرار کردن با خودشون فرزندان والدین بیشور به خاطر اینکه در سالها اولی یک عمر و دوران شکلگیری شخصیتشون در سطریک آدمای بیشعور بودن به همون بیشوری پدر و مادرشون بار میان یکی از این افراد به اسم ویرجینیا پس از سه سال درمان اکنون تونسته خودش رو پیدا بکنه او با آرامش خاطر میگه، بچه که بودم دلم میخواست وقتی بزرگ شدم بیشعوری مثل مادرم بشم. حالا میدونم که چقدر از اون آرزو لطمه خوردم. من باید خودم باشم و برای خودم زندگی کنم. باید تولدی دوباره داشته باشم. لطفا برای من اسمی انتخاب کنید. س. اشکال در فکر کردن فرزندان والدین بیشعور اجازه نداشتند که فکر کنند تا بتونند در حد یک بچه‌ی معمولی صاحب نظر و عقیده بشن بنابراین، با تردید، سست ارادگی و حتی تمایل به تمرد از قوانین بزرگ میشن ترس دائمی اونا از اینکه مرتکب خطایی نابخشودنی بشن یا اینکه به خاطر سر خود بودن مؤاخذه بشن فکرشون رو همیشه مشغول داشته آلیس یکی دیگر از همین افراده که در حال درمانه به خاطر آزادیش از زیر یوغ پدر و مادر بیشعورش به خودش میباله. او به چنان استقلال رأی و اعتماد به نفسی رسیده که شعبی از انجمن زمین مسطح رو در شهر جدید محل اقامتش تشهیل داده و علاوه بر اون مشغول راه انداختن کمپینی برای نجات پلاتیپوس ها در ایالت کنتاکی آمریکا است. چهار اشکال در سخن گفتن در بیشتر اوقات، فرزندان والدین بیشعور در بزرگسالی هم مثل بچه ها حرف میزنن و به همین خاطر از اینکه خودشون رو بزرگسال معرفی کنن واهمه دارن اما با روش های درمانی مفید جدید بیشتر اونا میتونن یاد بگیرن که از حد گفتن جملاتی مثل چشم ببخشید و تو رو خدا منو دیگه نزنید فراتر برن در بعضی نمونه های یاد گرفتن که چگونه جیغ بکشن و فریاد بزنن و حتی بتونن مثل سایر مشتریان قضایی که میخوان در فسفوت با نعره سفارش بدن. بعضی حتی تا اونجا پیش میکنن که با رادیوشون عاشقانه حرف میزنن. 5. اشکال در خندیدن بعضی از این وقت برگشته ها در چنان محیط سرد و سنگینی بزرگ میشن که گمان میکنن عمل خندیدن یک واکنش جنونآمیز و بسیار بسیار عصبی است. درمانگرها برای درمان این قربانیان منحصر به فرد، دوره های سماهی برگزار می کنند که شامل دیدن فیلم هایی از چارلی چاپلین و نزاگیر اون به مدت دوازده ساعت در روز میشه. بیش از نوید و پنج درصد از کسانی که این دوره رو می قادر خواهند بود پس از اون و با تیب خاطر قه قه بزنند. البته اگه ببینن که یه نفر داره با اصحابازی میکنه یا گشاد گشاد راه میره. شش. اشکال در تخلی. شاید برای بعضی عجیب به نظر بیاد اما بچه های والدین بیشور اونقدر احساساتشون رو توی دل خودشون نگه داشتن که با بالا رفتن سن و سالشون عادت کردن هر چیزی رو توی دلشون نگه دارن. در این زمینه کارساز نیستن. اونچه اونا نیاز دارند اینه که دوباره یاد بگیرن چطور توالت برن بعضی از درمانگرها از هیپنوتیزم برای رفع این مشکل استفاده میکنن به این صورت که اونقدر اونا رو پس پس میبرند که روی توالت بیافتن و به نتایج دلخواه برسند. اونا به این بیماران تلقیم میکنن که انجام درست این یک کار برای دل خودشون خوبه و نه والدین بیش آنگاه توانسته اند با آرامش خاطر سیفون را بکشند هفت اشکال در آرامش خاطر فرزندان والدین بیشعور اغلب به خاطر اینکه سالها مجبور بودند در برابر نکوهش ها و سوء استفادهها حالت دفاعی داشته باشند وقتی بزرگ میشند بسیار عصبی و مضطربند اونا پس از درک این مطلب که هیچ دشمنی به جز پدر و مادرشون ندارن میتونن به آرامش برسن. در برخی از موارد موفقیت آمیز حتی به مرحله ای رسیدن که بتونن پس از سالها به دیدن والدینشون برن و هنگام حرفهای ملالت آوریشان مبنی بر اینکه زمانه خیلی عوض شده و بچه ها دیگه مثل سابق نیستن چرت مفصلی بزنن. یکی از مهمترین نکات در رفتار با فرزندان والدین بیشعور در نظر گرفتن این نقطه است که اگر بزرگ سالن پس باید بتونن از پس مشکلات خودشون بر بیان. اونا دیگه با والدینشون زندگی نمیکنن و به ندرت اونا رو می بینن. اما دقیقا به همین خاطر این افراد به درمان احتیاج دارن. اونا اگه درمان نشن یا درمانشان موفقیت آمیز نباشه، در خیال و آرزوی داشتن پدر و مادری باشعور به ارتباط خودشون با دیگران نظیر دوستان یا همسر ادامه میدن و در نتیجه اون ارتباط ها هم تا زمانی که مشکل به طور ریشهای حل نشه به جا و سالم نخواهد بود. به همین دلیل من به فرزندان بزرگ سال والدین بیشعور پیشنهاد می کنم که این مراحل رو در طول روند درمان یا به صورت جداگانه انجام بدن. یک. با پدر و مادرتون آشتی کنید. به دیدنشون برید و به اونا بگید که حاضر هستید تمام مشکلات گذشته رو فراموش کنید. بگید که حالا درک می‌کنید واقعا برای اونا آسون نبوده که مثل بچه یا آدم با شما رفتار کنن و گذشته اگه میخواید از ارث محروم نشید، هیچ حرفی از بیشعوریشون نزنید. دو، به صفاتی که از والدینتون گرفتید، خوب و دقیق فکر کنید. همه اوناییو که مشکوک به بیشعوریه دور بریزید و جاشون رو با صفات آدمیزادگان عوض کنید. سه، پدر و مادرتون رو فراموش کنید. اگر در قید حیات نیستند و شما را هم از ارث محروم نکردند بخشی از ارسیتون را به انجمن پاکسازی بیجورها اهدا کنید تا نشون بدید که بر تأثیرات اونها قلبه کردید گامهای بلندی در تشخیص و درمان معضلات فرزندان والدین بی در در بزرگسالی برداشته شده اگه شما هم یکی از این افراد هستید، بهتر افرادی رو که همدرد شما هستند در اطراف خودتون پیدا کنید و با هم یک گروه درمانی تشکیل بدید. همچنین توصیه می کنم کتاب ارزشمند بدترین باباگ دنیا اثر کریس آفورد رو هم از دست ندید.